بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين والاه وصحبه اجمعين اما بعد ما هنوز با مرجئه هستیم مولا شاید ان یکی از اخرین مسائل باشه هر چنکی مسئله استثناء مونده بدل ما دیگر جنس عمله مثال دیگه هم بازم هم مونده که خواهد اومد. عجله نمی کنید بسش. هم بحث نواقض ایمان. هم بحث جنس عمل و تارک صلاب و تارک جنس عمل خود عمل کلم به طور کلی. این مثاله انشاءالله بیشتر بار کرد. لیکن ما اون چیزی که مد در نظرمون در درست گذاشته بود این بود که این آیات صریح این ادله صریح از قرآن و سنت بر ضد مرجعه باها چطوره؟ کتاب تفسیر رو می‌نویسن، چطور تفسیر می‌کنن؟ کتاب فقر رو می‌نویسن. این آیات: اذا تليت عليهم ايات الزاد از ایمان. این آیات رو چگونه تفسیر می‌کنن؟ چگونه تعویلش می‌کنن؟ حالا تعویل که هیچ تحریف خب بس موقعه مرچه در طبال نصوصی که درش زیادت ایمان آمده اولا حالا من سه چار تا شبهشون خلاصش میکنم هرچند که شبهاتشون حالا زیادتی نیست منشیش هفته بیشتر نیتونی که من به چند تا شبهه اصلیشون که مدار اصلی شبهاتشون روش هست فقط اشاره میکنم اولا گفتن که مسئله زیادت ایمان زیادت است گفتن که چی؟ زیادت ایمان حمله بر زیادت تشریه چطور حمله بر زیادت تشریع گفتن نماز اول دو رکعت بود کم کم نماز از شد شد 4 شد شرس. شد شد رکعتاری هستنا کم کم از شد شرع کامل شد و خدا من میفرماید علی اکبر تلکم دینکم امروز دین کامل شد تا جایی که دین کامل شد پس زیادت ایمان زیادت تشریع هست حالا این چیزی که در سفر حقاید نصفیه صفحه 124 رو برده رد اولا زیادت و تکمیل در تربوده خداوند از یوم اکمل تو کامل کردم این کمال در تشریع در اون چیزی که ما بهش ایمان باید بیاریم در تشریعی که ما باید بهش ایمان بیاریم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 سؤال، آیا لازمه ای کمال دین اینه که همه ما در عملمون به اون دین مساوی باشیم؟ آیا در انجام مأمورات اون چیزی که ما بهش ام شدیم مصابی حقیق بر حج فرد شده بر همه ما فرده، بر همه مکلخی خب الان من استطاعتش دارم میرم، شما استطاعتش ندارید نمیرید آیا منی که میرم منی که جهاد میکنم منی که مالم میدم مثل کسی هستم که کسا نمیره شهر کامله شهر کامله لیکن ما کسانی که شر رو عمل میکن نسبت ما به اون ماموراتی که بهش دستور داده شدیم مختلف مساوی که نیستیم سه با اینکه که مشکلشون مشکل مرئه اصل اشکالشون برمیگرده به همون عید عملشون که عمل از ایمان نیست این بزرگترین اشکالشون که عمل رب به ایمان نداره ایمان هم که و زیاد نمیشه و کسی که حالا حالا این مشکل درباره کسی که را عمل از ایمان نمیده لیکن مایی که عمل را از ایمان میدونیم عمل وسیلهی برای زیاد ایمان میدونین پیش ما هیچ اشکال نیست که هر کسی که عمل میکنه هر عاملی به اندازه عملش و خواداش داده میشه خب شما مرجعی چه میگید در روز قیامت آیا شما میگید که مثلا به ما همهمون مساوی هستیم یعنی همه در بند خداوند یک سانیمون نمیدونم محاسبه نمیشیم و یا مثلا بالفرد حساب کتابی نیست به هم وجود نداره جواب ها اونجا چی؟ این یکی از مهمترین ردودی که بیشه بعد اونها خب شبهه بعدی این شبهه واضحه شبهه دوم اینه که گفتن این زیادی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 زیادی خود ایمان که نیست یعنی ایمان خود شخص کامله یعنی و زیاد نمیشه مؤمنین زیاد میشن و گفتن که حالا تصدیق و همچین اعمال کلن چون عرض و عرض هیچ وقت باقی نمیمونه مگر با تجدید در اشخاص و در امثال حالا جواب اولا ما باید حد و حدود عرض را بدونیم شما گفتید مثلا عرض و اعراض کلن واقعی نمیمونن مگر با تجدد و, تجدد و تجدید امثال روز به روز مؤمنین تر بشن این زیادی زیادی اشخاص هست ما بکیم اولا عراض یعنی چی؟ در علم منطق است.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 آیا این رنگی که ما در آبی می یا در محلول دیگری حل می همونطور باقی می مونه و یکسان رنگ سبز و باهم با هم فرقی نداره رنگ همه یکسانند یا اینکه رنگ این رنگی که ما در آب می هر چقدر بیشتر بشه غلطتش بیشتر بشه رنگش بیشتر میشه. عرض شما استدلال می‌کنید کنید با عرض اینه که این ایمان تصدیق. پس تصدیق عرضه و عرض هم کم نمیشه ما میگیم نه همین عرضی که شما دارید این ایمانی که دارید میگید تصدیق شما میگید عرضه ما میگیم که چی؟ عرض نیازی به جایی داره که در اون اعراض بشه در اون عرضه بشه و اونجا مثل خودتون مثال میداریم مثل رنگی که احتیاج یک جسمی داره که در اونجا مثلا کارشو انجام بده که در اونجا حل بشه یا در بش رنگش پاشیده بشه رنگا رنگ بشه. پس با این تعریف عرض احتمال کم و زیادی داره یا نداره؟ احتمال کم و زیادی داره؟ ما چیزی که در طبیعت جدا برومونه همین رنگ جا شما این مثال میدنید ما این رنگ ببینیم که غلطتش کم و زیاد میشه. دو بومن. آیاتی که دلارت بر از زیاد ایمان دارن طریحاً در زیاد خود ایمان نه زیاد اشخاص و اعداد آنها مثلا آیه 124 توبه و اذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادتوه هذه ایمانا ایكم حالا ایمان شخصی اشخاص یا تعداد اشخاص ایكم هر یک شما کدام یک از شما این آیه و این نشانه ایمانش رو زیادتر کرد خب این هم دوم صبحی دوم مالا از دومش رو به حاضر که این از زیاد و زیادی به معنای اشراق پرتوب نوره یعنی یک شخص ایمانش که تم زیاد نمیشه بلکه قلبش نورانی تر میشه و مقصد از نورانی شدن قلب زیادت پاداششه زیادش شد. زیاده, زیاده فر نه زیاده خود عمل. عمل ثابته. خود ایمان، ایمانه که در قلب هست ثابته. زیادی روی سمراته، نه روی خود اون ایمان. جواب. اولا این تعویلی از دلانت سریح به تعویلات بعید و دور و غیر منطقی چرا ما وقتی که میگیم این تحویلات ما گفتیم سرس از ظاهر صحیح به تحویلات بعید و دوره یعنی یک لفظ را یک سریح لفظ یک نس سریح را تعویلش کردیم به یک معنای دور مثلا بلفرد وقتی که من میگم شیرومد احتمال درکت که ذهنش بیاد این شیر شیر پاستوریزه هست آیا لفظ آمدن برای شیر پاستوریزه به کار برده میشه شاید احتمال بده شیرومد از یک شخص شیر باشه لیکن احتمال غیرممکن است که اینجا شیر پاستوریزه باشه شیر گاب یا شیر شسور باشه این تعبیل دوره تعبیل بعید غیر ممکن چرا؟ چون سمرات ایمان سمرات خود این ایمان در داخل خود ایمانه یا در خارج خودش من الان میویستم نماز میکنم درسته؟ سمرهش سمرهش چیه؟ پاداش و عجل در روز آخرت درسته؟ این در خود ایمان بود یا در عاقبتش معالش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 و پاداشم خود طاعته کسی عقلی میاد میگه فلان عمل نماز عبادت هم پاداشم طاعته کسی عقلی میاد این هر بزنه نماز طاعته بیس هفت بار عجرش کسی میاد بگه اینم طاعته کسی میاد بگه طاعته نمیاد کتی بگه بلکه, بلکه هر شخص عاقل میدونه که ثواب طاعت نیست ثواب بر طاعته امر خارج از طاعته ثواب خود طاعت نیست طاعت یه چیزی هست ثوابش یه چیز دیگری که بعدن, بعدن خدا بندگو ما میده امام ابو در معتمتی اصول دین صفحه 189 و صفحه میگه میگه ایمان و بالطاعه و نفسه و نفس هو ثوابه ایمان میگه زیاد میشه با طاعت و کم میشه با گناه خودش و ثوابش ایمان ناقص میشه گناه انجام دادی هم ایمان ضعیف میشه و هم ثوابه چی میشه کم میشه درسته گناه کار میشی حسناتو تو بر میدارم. رسد به کسی دیگر میدم برفیم خلافا قولهم لا یزید ولا ينقص لا ثبابه ولا نفسه معتذر گفتن نه ثبابش کم میشه نه خودش ایمان نه خودش نه ایمان یه چیزی هست نه خودش نه خود ایمان تکن میخوره با ناخدش. ناخدش ناخدش. ناخدش. نماز نماز بخود ده رکات بیس ایمان کم زیاد نمیشه و نه نمی هم ثوابش خب پس چرا من عمل بکنم وقتی که من ثوابم کم زیاد نمیشه چرا بیام مثل نماز بخونند به خاطر همینه که معتزله منقرض شدن حالا اساسیات و چیزهایی که سبب انقراض معتزله شدن چیزهای زیادیه. حالا یک از مسائل می‌بینید که مثلا نماز نمی شب با موسیقی میدونن موسیقی بر خواب نمیره هموقت مشو موسیقی و فلان و نمیدونم ایزنوش این مسئله متذله وقتی که ایمان روی انسان بی‌معنی باشه نماز خوندن مسجد بدون معنی باشه نه ثواب کم و زیاد میشه و نه ایمان کم و زیاد میشه اصلاً عمل بکنه و خلافا الاشاعریه فی قولهم یزيد و ينقص ثوابه لا نكتب اینا در در هم حالا که در رد اینها داشتیم دادیم رد بر اینا بود که شاعره هم نوعی اتفاق دارم با مرجئه گفتن که ایمان کم میشه لیک ثوابش نه یعنی شما آمدید عمل بکنید یک عمل ایمان یعنی کاری انجام دادید قرآن رو بیش دادید ایمانتون زیاد نمیشه بلکه اون چیزی که زیاد میشه سبابتونه آخرت آخرتتون در آخرت قرآن خودید پازاش بیشتری خواهد گرفت لیکن در دنیا کیشه ندارید ایمانتون نه به خدا قویتر میشه و نه به خدا تر میشه میگه به ددالت بررد بر, بر اینها فرمولده خدا بنامه چند تا آیه ذکر میکنه از جمله ویدتوریت علیهم معایاته زادت هم ایمان ها این صریحه در اینکه خود ایمان اشخاص زیاد میشن نه و نه میچوز بلکه خود ایمان وقتی که در نصوص اومده باشه خود ایمان کمون زیاد ما وقتی که در نصوص نگاه میگنیم میبینیم که اشخاص به اعتبار ایمانشون تفاضل پیدا میکنن هیچ کدوم از یکی از ما اجازه ایمان ما به رسول الله وقتی که ما نگاه به نفوس میکنیم نگاه به ادله قران سنت میکنیم مثلا دست النار النار فیقول الله اخرج منها من كان في قلبه مثقال ذره کسی می دستوری ده خدای من که اهل بهشت ورده بهشت بشن بهشت بشن اهل جهنم وارد جهنم بشن بعد خدای من اینکه کسی که کوچکترین ذره ای از گندم یا کوچکترین ذره ای از ایمان در قلبش باشه اون رو از آتش خارج بکنه کوچکترین ذره ایمان اگر ایمان که بو زیاد نمیشه چطوره که اینجا در این در این حدیث از ایمان به ذره مثال زده شده ده. چرا ایمان گفته شده ذره پس ایمان ذره داره بزرگتر از ذره هم داره یا مثلا اون که در حدیث دسته بخاری داریم بازم که رسول الله گفتن که من در خواب دیدم که اشخاصی در بهشتن بعضی ها فمیسهاشون تا شکمشون بعضی تا ساقشون بعضی در زمین میکشن مثل عمر رضی اللہ عند که میگید این شرمند دیدم که عمر تو پیراهن تو میکشنی کشان کشان میکش در بهشت بعد عمر مثل رسول صلّى فما اول فدالکه یا رسول الله چی تعبیرش قال Berlin. دین دین ایمانش است ایمان زیادتر شد نشد بعضیات کمی شد تا بعضی نشد تو باز شد بعضیات ساق باز شد و بعضیات زمین میکشند زیادتر شد این ایمان یا نشد این دین زیادتر شد زیادتر شد یا اون آنچه که در نزد ابو داود داریم یا حالا اول بخاری تموج بکنی در بخاری از در بخاری داریم داری داری داری در روايات محمد بن الحنافیه أخير محمد ممن علي. علي بن ابن طالب رضي الله عنه ليك سألت أبي يعني كيف علي بن ابن طالب فقلت أي الأصحاب أفضل بعد رسول الله حديث سأل بخالي سؤال كاردن يا علي بن ابن يا أبي أي الأصحاب أفضل بعد رسول الله سلم كذمك أصحاب بيترا بعد رسول الله بيترا قال أبو بخ قلت ثم من فتكفت من گفتم كي فقال عمر قال و دائما قال فخشيت ان يقول عثمان فقلت ثم أنت فقال ما أنا إلا رجل من المسلمين الا ناخذ علي بن ابي طالب رضي الله عنه چطور ميدنه كه او بهتر بوده يا عمر بهتر بوده از خودش آيا غير از بحيه غير از بحث ایمانه كه با ایمان برتری پیدا كرده با مال او بهتر شده با دنيا بهتر شده با بحث ایمانه إن أكرمكم عند الله أصحابكم تقوى إيمان لا حديث يقال ذين درى نذاب وذاب رضي الله عنه هذا صحيح هذا عبد الله بن كنا نفاضل بين أصحاب رسول نفاضل تفضل بالشيء إن يكذب يقرب ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي رسول الله مذذاه في زمن عمر عمر سنت تخلیری هست یا نید؟ فنقول ابو بک سمع ما سمع زمن فی روایت الافتبرانی و که سلام و این کاری هم بر ما نمی کرد در این در این که ایمان کم میشه بر دیگران، بر دیگر، بر اشخاص دیگری میتونم برتری پیدا بکنم هر کدوم از ما میتونیم بهتر بشیم و ایمانمون رو تقویت بکنیم و به خدا نزدیتر بشیم خب، بحث استفنان رو میذاریم در درت آینده لیکن، حالا، حالا شاید در آینده یا بعد از آینده حالا لیکن، الان اون بطلبی که ما منتظرش بودیم، ما هستیم که خیلی مهمه برای طالب علم و اون هم این ما دونید ایمان مکم رو زیاد میشه حالا این ایمان با چه زیاد میشه با چی تقویت میشه این مهم طالب علم بدونه این همه مزیر اومدیم تا حالا ببینیم یک طالب علم سنی یک عالم سنی و یک مفتدع چقدر فرق دارن با هم وقتی که بحث رده بر علماء میشه، وقتی که علماء در جلوب عوام خرد میشن و بدی علماء گفته میشه، ببینیم کدوم یک از علماء ربانی هستن و کدام یک ربانی نیستن. معیار عالم بودن در چیه؟ فرق عالم اصلی و غیر اصلی رو بدونیم. ببینیم خدابند چطور از ما خاصه ایمانمون رو بکنیم. اولا اولین چیزی که ما برای اون الان حلقه زدیم علم شرعی است. خودت شما لم کرده بودی در قلب خودت لم کرده باشید در قلب این حلقات وقتی که درش هستید به خدا یا نه؟ به خدا نزدیکت این کلاس رو ای یک محتعلتش بگیرید ذئیک میشید نمیشید ذئیک میشید قوتمون از بین میره جرأتتون اصرارمون تذکرمون بی خود خداوند متعال دینش و رحمتش شرعش از خدا دور میشید بس اولین چیزی که ما با اون میتونیم ایمانمون رو تقویت بکنیم این علم شرقیه. آره، چی فق بشه، چی مسلح بشه، علمی که باشه. هم برادرین کلمه شهر ایج علم الله و لله و من احصاها داخل دنیا. برادرین علم، علم خدا، علم علم تو، علم توشید خداوند. توشید که نجات میده، توشید که وارد بهش میکنه، که جهنم نجات میده. توشیدی که ما رو وارد اصلاح می کنه توشیدی که ما را از او قبل نجات میده، ده که ارس در دنیا میگذاره توحیدی که سبب اجرای حقوق خداوند و حقوق بندگان در میان خودش می شه توشید نباشه بندگی دیگه خدایی مطرح نمیشه، دیگه پیامبران بیمعنا هستن توشید نباشه دیگه ادالت بیمعنا توشید اصله و توشید برای اون رسول و پیانبران فرزاده شدن. و لقد كل اثنان بی رسول انعبود الله وشتن به طاقود. پس برای توشید فرستاده شدن. پس اولین علم، اولین واجه شخص مکلب، توشید خداونده. اولین علمی که ما باید بدونیم چیه؟ توشید باری تعالی. و آخرین چیزی که ما باید برن دنیا بریم چیه؟ توشید باری تعالی. رسول الله همون در آخرین لحظات تندگیم لعن الله اليهود و النصار اتخذ قبوره هم قبورا بی عم مساجه توفیده غم توفیده غم اینکه مردم بیان در شرکی افتر پس توفیده هم اول رسول الله و هم آخر رسول الله حسن یاود حالا ببینیم من در جامعه امروز خودمون چقدر از توفیده دوریم چقدر ندر نیاز چقدر نمیدونم پیشه صحار و صاحرین و نمیدونم جه دوگرانی علم وقتی که کمرنگ بشه وقتی که انسان از خدا دور بشه خود به خود جایی این علم شرعی جهل و جهالات و ذلالات و گمراهی ها میگیره علم که بخواد بیاد علمای ربانی بیان این مشکلات حل میشه این گمراهی ها دیگه اون معتدلی مجبور که بیاد به مسجد نماز بکنه مجبور که بیاد مسجد و بکنه مجبور که بیاد به پای صفه جهاد بیست جهاد بکنه نه اینکه ترسی باشه و شو به بیش نتیجه نه نه ما نمیتونیم خودشان رو بدون تربت افنجاران تان دارن و فنان دارن و به ترسه. توجیه بسیاری ازشان چه میده ایمان ازشان را تقویت میکنه تا جایی که یک مؤمن میتونه در مقابل ده تا کافر بیاید کف ترسه بد از ترسه خیانت به دینه باور میکنید نه در مقابل این عدلتو نه در مقابل این نصفتو در مقابل هیچ کدوم از اینها یک مبتدع یک کافر نمیتونه بیسته شکل قیافه یک مؤمن حقی یک شیطان ببینه مثل عمر راهشو کج میکنه عمر وقتی که در یک کچه میرست شیطان راهشو کج میکنه نمیتونه هیچ شیطان در مقابلش بیسته علم به انسان قدرت میده علم انسان ایمان میده علم اون علم صحیح انسان به خدا من نزید تر می کنه آلا اون مرجعه اون اشعریه اون معتذله محرومن از این علم نیسته اونهایی که صفات خدا را باطل کردن تعثیلش کردن تعبیلش کردن تحریفش کردن خب چی دارم چی را می پردن خدایی که سک باشه خب کسی که میگه خدا من همه جا خب اون سکش خدا فروس می پرد چرا آمدی مسجد نماز بخود پس اون که داره بود بیپرسته پس دیانتش هم درسته. این مذهب ابن عربی، این مذهب سروش، این مذهب الهای خمشه این. هر کسی خواهد، هر طوری عبادت بکنه عبادش درسته. آخرمچی دانشجو هست. بیت شعر مولانا هم بیت میاره. کجایی که چارکت بوده در قصه موسا و چوبان رو میاره. بله داره بخش به خدا داشت به خدا میکرد. شما میگی این قصه رو قبول چوپان میگو که ای خدا کجایی که ملاحظت نمیدنم شنیده بکنه موفقانه رکفونانه بکنه مطابق از انکار میکنه بعد خداوند انکار میکنه بعد میتا آن میاره می میفرستی هر که میخواد ما رو بفرسته بفرسته شجرو شجرو فرستش کردی چی میخواد برسه مولانا میخواد بگه راه های ابادت زیاده راه خدا زیاده در صورتی که در شرع ما راه شیطان زیاده راه خدا یکی از اذکرات مستقیماً فتبعو ترات یکی مستقیماً یکی راه ها هزار تریخ و هزار راه نمیشه راه خدا یکیه این شعار صوفی های این خود تصوفه این افل گمراهی و این قصه دروغ بر نبی من و رسول من موسیٰ علیه السلام با این قصه میخوان رو بگن که بدعت حسنه در دین هست هر طوری خاصی خدا را عبادت بکن صوفی میاد زنا میکنه که نه این عبادت است مشروب نه میگه بر من جایزه چرا؟ چون برای خودشون تصفه های باطل گذاشتن حالا ما با این معیارها میتونیم تشخیص بدیم با این معیار الهیجری میتونیم تشخیص بدیم کی علم هست کی علم حقیقی نیست کدوم برخط ظاهره ظهره علی رو نگاه بکنیم کدوم یک از ما موفق ترین کدوم حزب و کدوم گروه کدوم دسته در دعوتشون موفق ترند در هدایتشون در عملشون در اخلاصشون کدام یک بیشتر اخلاص دارد؟ اون شخصی که داره حض تشکیل میکنه و تشکیل میده و برای حضش پول جمع میکنه و اون کسی نبیدن تشکیل میشه برای نبیدنم فلان قضیه و فلان بهمان کدام یک برای خدا داره کار میکنه همه اینها این دو با رسی نکشی المشرعی برای خودش افراد و معیار و بند و قنودی داره دلیل اول بران چیزی که ایمان رو تقویت میکنه و وسیله برای تقویت ایمانمون یقول الله تبارک و تعالی شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه واولوا العلم قائما بالشه این آیه سری پیدا در علم شرعی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 طرف خود خدا آمده پس اولا خداوند شخصیت میده اهمیت میده به علما و خداوند از اونها دومان خداوند از اونها به اسم علم یاد کنه اصحاب علم علم علمی که ضد جهله و صفتی یک شخصی مثلا بگیم معالمه صفتی برتری داره بر کسانی که عالم نیستند پس خود علم ارزش داره در نزد خداوند هل یسو الذین یعلمون والذین لا یعلمون هیچ وقت آیا مساوی این کسانی که میدونن و کسانی که نمیدونن هرگز خداوند در این آیه سبو من خداوند در این آیه گواه میده شهادت میده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 یک شخصی از بیرون میاد میگه من دیدم فلانشخص دزدی کرد آیا میتونید میتونید بگد ه این شاهد, شاهد قضیه از شهادتش مورد قبوله خیر تا اینکه ما ندونیم قسم نخوره که من با چشم خودم دیدم فلانشخص دزدی کرده قبولش نمیتونیم بکنیم این شهادته شهادت خداوند ما شکی درش نداریم که برحقه خداوند تمیع و بسیره لیکن الان ما ببینیم در این آیه چه خصوص اومده؟ شهادت خداوند، اون گواه خداوند بر شهادت علماء یعنی اون عالماء علمایی که اومدن از حق خدا زفاع کردن اونها هستند که حق خدا را شنبتن اونها هستن که حقیقت علوهیت و و صفات خدا داره بر شهادت اهل علم گواهی میده حالا بعد ما بیام بگیم ابن باز درباریه البانی مرجعی نمیدونم درباریه من بعد ما بیام قام و رزوکشف علما بذاریم حب برای علما بدیم این نهایت جهله که خداوند بیاد گواهی بده بر علم علما ما بیام بگیم که چی علما خائنن علما جاسوسن علما نمیدونم درباریان علما ترسند خدا، چطور میگی به خود اجازه میدید که اسم عالم رو روش بذاری و بعد میگی که چی؟ این علمایی که علم شرعی دارن، علم نبیدن فقه و شریعت و قرآن و تفسیر دارن، از شما ترسیترند. این علمی که خوندن چی چون کرده درد؟ این علمی که خوندن کجا بردنش؟ این ام در اونها تحصیل نگذاشته ماشاءالله در شما تحصیل داشته شما بدون علم ایمانتون و نه ترسیتون قلبتون از علما هم بیشتر شده به ما یاد بدید چی چیز ایمانتون رو قبی کرده چی خوندید کجا خوندید بشه که خوندید این شهادت خداونده خداوند ما اون چیزی که داریم جلو خودمون اینه که گواه میده بر گواه علمه بر این که چی؟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 پیانبران فرصده شدن. چیه؟ عبادت. خداوند داره شهادت میده، گواه میده بر گواه اونها به اینکه خداوند فقط مطمئه قبوله. بر بزرگترین حق خودش داره چی؟ گواه اونها را قبول میکنه. خیلی مسئله بزرگیه. علم خیلی مسئله بزرگیه. که خداوند این این اهمیت بهش میده. پنج اومد. خداوند قول العلم را در رضبه ملایکه قرار میده. چقد که انسان با علمش به درجه فرشتگان برسه چقدر بالاست که خداوند ما را تعیید بکنه بگه شهادتون قبوله چقدر بالاست که خداوند اسم گواهیمون بر رحدانیت خداوند را اسمش بذاره گواه شهادت چقدر بالاست که خداوند در قرآن از آنها به اسم اهل علم یا سکره اهل جهد خیلی با رخ مرتبا علم شرعی خداوند خیلی انرژی داره که در این آیه اینچنین بسپش میکنه در این آیه اینچنین در رتبه ملائکه قرارشون میده از آنها بیاد اهل علم یاد بیکنه خیلی واقعا رتبه بشر تف بالایی هست که انسانو داشتیم میکنه اهمیت بده به این علم خودشو نجات بده همروز بیه علما باشه انما يخ الله من عباده العلما بشه کسانی که از خدا می ترسن واقعاً علما هستن اگر علما از خدا نترسن کی می اگر علما ما نترس باشن از خداوند ما می از خداوند خیلی مسئله این مهمیه که سعی و تلاش بکنه به خدا نزدیک بشه و این علم شرعی وسیله قرار بده برای از زیاد ایمانش دلیل دوم از جمله دلایل این که ایمان تقوية مشه علم فرمودي الله جل شانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات اولا خدوان قفت الذين اوتوا العلم علم انهايك دادشدان خدوانت بادر تریش بنوشت از ذهنشون از طب جهل دوبا من اینی که خداوند میگه ما اونهایی که ایمان آوردن را ایمان آوردن را بالا میبریم و لذین او اوتول علم درجات علم هست که خدا ما را بالا ببره ایمان ما را قوی بکنه درجات ما را در بهش بالاتر ببره هم ایمانمون زیاد بشه هم سمره ای ایمانمون پس بزرگترین وسیله هست برای چی؟ رفعت بزرگی خدا خودمارا بزرگ بدونه نه بندگان ما خودمون رو در این آیه بذاریم ما خواستیم خدا را راضی بکنیم یا مردم خودمارا نگاه بکنیم و اون علماءی که در این مملکت در داره برای ما هستن برای خدا فتوا میدن یا برای مردم با ای این که مردم فردان نگر و یا فلان اینا یا اینکه فقط از خدا میترسه و قول راضی نیست که بر قول خدا و رسولش حال دیگری تقدیم بکنه نمیخواست قول رسول الله را زیر پا بذاره رفعت خدا را میخوام را رفعت مردم خودمون ما در نظر دیگریم اگر علم شرعی اگر ایمانی من میخوام تحنیت بشه باید رد تحت خدا بخوام باید علم شرعی را بخوام باید اون چیز را از خدا خواهم باشیم که با آن انبیا بالا رفتن صحابه با آن بالا رفتن علم شرعی علم شرعی و تنها تنها بزرگ وسیله هست که ما میتونیم در نزد خدا بزرگ بشیم. با خدا ما را بزرگ بدوند نه مردم دلیل ثبوت فرموده خداوند ما یخش الله من عباده العلماء علماء رازت میکنه منم به اسم ترس به اسم خشیت حتن که غیر از علماء هم شاید ترس داشته باشن از خداوند و شاید تقوی داشته باشن لیکن تخصیص علماء و ذکر و یاد علماء دلیلی که بر دلیلی است بر اینکه علم است برای تقویت ایمان علم وسیله است که میتونه انسان با اون به اون خداوند نزدیک بشه چه بیشتر از این که این علم است برای تصحیح عمل خداوند چی از ما قبول میکنه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 الله نه لکم ام علی الله تفترون وبما خدا بهتون اجازه چینین کاری بکنید چینین عبادتی رو بکنید و چینین سرر انجام الله آاللهنه لم این چیزهایی که اوردید این نمیدونم عبادتهایی که ساختید از خودتون گذاشتید تشریعاتی که اوردید استحسانایی که میکنید آیا خداوند بهتون اجازه داده یا اینکه دروغ بر خدا میبندید ام عل اللهتفرون فس علمك إنسان ممكن بخضان هالذيك بشه عمل صحيح با تكفيق علم الصحيح، با دعبت بسي قدران با علم الصحيح، با وسيرات وضعه إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظات الحسنة، بالحكمة، با شئها يمحكام نبا قوتها يحكمت أنه مهتمية، بعضها فكرة حكمت يعني نبي دينا مراعاة وفلان، نا حكمت يمحكام قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيره أنا ومن التبع دعوة مري تمر بلداته روية بينيشة علم السحيحة روية محكمة ما هي هل عقلي منطق عقلي فكره كمانه خياله تباهمه تباهمات اين فائده المشارعي اين سامريه المشارعي كميتون ايمان مورو تخبيئات بكون وبضغترن شيز وبهترن شيز دع تخبيئة ايمان دو من شيز در تقریه ایمان تفکر در مخلوقات تفکره که میتونه سکر انسان رو باز بکنه تفکره که به انسان عقل میده تفکره که خداوند در قرآن مجحش کرده و مخالفین عقل را مزمت شمرده و گفته درباره برای مشتیکی لای عقلون لای افقهون گفته عقل ندارن و فهم ندارن عقل و تفکر و فهم و نظر در مخلوقات خدا یکی از وسائلی که ایمان تقریب بشه انسان سری به آزمان بکنه ببینه خداوند این کهکشان های رو بود چرا بود این زمینی که یک میلیون بار کوچکتر از کرشیده چند میلیون بار کوچکتر از کرشیده مایی که در این زمین این ذره ریزه هستیم چی هستیم چرا خداوند من عبو داد سست داد در همین شرع ما نگاه بکنید در همین احادیتی که ما میخونیم این معجزاتی که در هست در همین قرآنی که ما میبینیم تفکر داشته باشید خداوند همینجوری نیورد بود پیانبران را همینجوری نف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 لیکن اشاعره اشعری ها گفتن نظر و استدلال اولین واجب است در مکلب یعنی اولین چیزی است که انسان با اون مؤمن میشه و بدون آن انسان مؤمن نیست یعنی سؤال بشیم از خودمون سؤال بکنیم ما الان در مدر مسلمان هستیم نیستیم فکر نکنه میگه از این مسلمون ها مسلمون باقی بمونه چون یک درصد این مسلمون هایی که ما داریم بعد از تکلف جو بعد ایجاد مکلب شدن نظر و استنلال نداشتن کدوم یک از ما نظر با نظر و استدلال وقت فکر کرده شک کرده در مخلوقات بعد به خداتیده ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله فطرته وقتی که فطرت آه بر وحدانیت خدا من میده وقتی که مشرکی که نظر استدلال ندارن مشرکی که عقل و ندارند، ندارن خدا را میشناسن چطوره که شما نظر و استدلال را اولین واجب میدونید این همه علامت استفهام در جلو چشمان اشعار اشعار برای برای نظر و استدلالشون یک طریقه مبتدعی, مبتدعی رو آوردن چی گفتن گفتن یک شخصی که مکلف میشه باید نگاه بکنه نگاه به حرکات بکنه زمین دور خورشید میچرخه ماه دور زمین میچرخه حرکات دلالت بر حدوث میدن هر چیزی که حرکت میکنه هر چیزی که حرکت میکنه یه حادثه و هر حادثه‌ای دلیل بر محدتی میده منم دستمو تکون دادم یک حادثه رخ داد نیاز داره که من باشم یک محدث کننده ای یک انجام دهنده ای باشه نیاز به یک انجام دهنده داره حالا این محدث میمونه که نیاز به یک محدت دیگری باش داشته باشه یا نداشته باشه من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 در دستیمون تنگینی میکنه بعد از اقوال که کفره و فلانه چی کفره اصلا خلال امن تو زدن دو گو به خدا ایمان آوردم این شک و شبهات رو بذار که ناطف همچیه غیر از خدا کسی اومده از دعای خدایی بکنه غیر از خدا ما به کسی که نیاز داری ما نیازمون کی برد رفت میکنن غم دلمون کی میدونن مسئله مهمی هست که متأسفانه این طریقه یه که هیچ وقت رسول الله به کار نبرده هیچ وقت رسول الله بهش نکرده ما متأسفانه میان بهش استدلال میکنیم نظر اشاعره نظر استدلال نظر استدلال قرآنی نیست نظر استدلالشون قرآنی نیست نظر استدلال قرآنی تفکر در مخلوقات و قائنات است که انسان را به یقین برسنه. که خداوند به انسان بگه که من متقنم من کارم با ادخانه من قدرت کامل رو دارم من فقط منصحق عبودیتم ما از نصوص چین میفهمیم اما اونها نه اونها فقط بسیاری که تو باید مؤمن بشین همون طریقه خودشون حادث و مددت تا آخر اینها هدفشون چاره من اینها هدفشون از نظر استدلال نظر و استدلال اینه که ما فقط اثبات بکنیم که خداوند ثانئه است آفریننده است آیا خداوند از ما از نظر استدلال خواسته که ما فقط بگیم خداوند خالق و رازقه یا اینکه سراسر این از ما خواسته خواسته از مون و خلق الجن والانس الا انسا خاصه او را فقط بپرسیم و عبادت بکنیم توعید الوهیت را خاصی یا الوهیت یک وسیله را قرار داده ولی متاسفان اونها افت قرار دادن خیر نه اصل نیست این خود نظر استدلال در نظر شعر مخالفات زیادی داره از جمله پنجمین مسئله که رو میشه انتقاد کرد اناراسمافا اسما سفات فعلی خداوند و تشکیک در خود قدرت خداوند و امور دیگری که در این مخالفات هست پس نظر و استدلال در نزد ما وسیلهای برای زیاد ایمان تقویت ایمان ولی در نزد عشاعر وسیلها برای تشکیک در ایمانه. پس نظر و در و درند مباثیری برای تقویت ایمان و برای که ما بدویم خداوند فقط مستحق عبودیت است و به خاطر همین است که خداوند به این مخلوقات قسم می خوره و تین و زیتونه و الفجر به این مخلوقات خودش قسم می خوره و شمس و ضحاس به این مخلوقاتش قسم می خوره قسم نه بخاطر خاطر اینکه به ما بر خودش خالقه بلکه به خاطر اینکه خودش فقط مستحق عبودیت خب این خلاصه بحث نظر استبلان میمونه مطالبی دیگری که میتونه میتونه این موارد میکنه میذاریم برای جلسات ی آینده سبحان الله چند است عالم خدای کرم سبحان الله